باب بعدي بابو من أبيح له الإفطار كسي كي خوردن براي او مباح بطول روزنك روزنك رفتن برايش جي جائزه وإباحة الفطر على أربعتي مباح بودن الفطر خودش بر چار قسم أحدوها من يسقط عنه القضاء والكفرة وروحي كي نوي أقبلش کسانی هستند که قضا و کفاره از گردنشون ساکت میشه. یعنی نه قضایی گیرند نه برشون کفارایی هست. و ثانی نوع دوم دو من يجب عليه القضاء دون الكفارة کسانی که قضایی برشون هست ولی کفاره برشون نیست. و ثالث من يجب عليه الكفاره دون القضاء گروه سوم کسی که برش کفاره هست اما قضا نیست. و رابع من يجب عليه القضاء و گروه جلوه چارمیون کسانی که هم برشون کفاره هست و هم برشون قضایی هست در پاورغی اومده منظور از کفاره اینجا در این موارد اطعام هست چیه قضا دادنه چون اون کفاره جما سه چیز اختیار داشته اولا سه چیز آورده بود اولاً باید کار میکرد؟ برده آزاد میکرد اولاً چیکار میکرد؟ برده آزاد میکرد اگر نمیافت دو ماه روزه میگرفت. اگر توانایی نداشت اون موقع شسم سکی رو خذا اینجا نه اینجا تاعم دادنه اینجا چیه؟ خو خب. ان 4 موردو با هم من يسقط عنه القضاء والكفاره فالصبي حتى يبلغ أو يحتلم والمجنون حتى يفيق اوني كان كفاره بريش هست نه قضائي ساقط مش ازش کفاره و قضاء بچه تا زمانی که بالغ نشده يا سن احتلام برسد او بچه مثلا 7 ساله ساله روزه نگرفت نه قضایی برش هست، نه ای و مجنون حتی یفیق دیوانه میگه نه برش کفاره هست، نه برش قضا هست، تا زبانی که از دیوانه گی سالم بشه بیهوش بیاد. فا اذا بلغ صبی و افاق المجنون بعد مضوع ایام من شهر رمضان استقبلا صیام باقیه میگه زمانی که بالغ شد بچه و به هوش آمد دیوانه بعد از رفتن چند روزی از ماه مبارک رمزان اینجا دیگه روزه باقی مانده رو میگید اما برای گذشته دیگه کفاره و قضایی برشون نیست و اما پس این گروه اول شد و اما من یجب علیه القضا دون الکفاره فخمسه تون اونهایی که برشون فقط قضا هست و کفاره برشون نیست اینا پنج گروه هند. احدهم المسافر اولین گروهشون مسافر یا یکی از اونها مسافر است الى مصافه تقصروا في مثلها الصلاه زمانی که به سفری بره که در اول سفر نماز هم چه میشه قاصر میشه که قبلا اینو توضیحش خودیم 16 فرسخ بود حدود 80 کیلومتر ها آورده بود 80 کیلومتر اینجا هم در پاورقی دوباره آورده فیفطر انشاء شاء او يقضي ولا يكفر میگه روزش رو میخوره شخص مسافر که به این اندازه سفر رفته بود و قضایی میگیره اما کفاره نمیده و اینسان فی سفر این اجزه اگر در سفر اومد روز گرفت اجزه اون روزش درسته این فقای اهل سنت این حرف رو میزنه ولی فقایشیه اینجور نمیداده اگر میگن رخت جایی تا ظهر بر نگشتید باید اصلا روزه درست نیست و يقضي ولا يكفر نه کجاره سبی بله مسافر میگه اگر روزه گرفت روزش درسته بله ما روایت داریم چی دارین که در بعضی سفرها پیامبر یا اصحاب بزرگان چی بودند روزه بودند و ان اقامه في بعض يوم قد افتر في اوله جاز له ان ياكل في باقيه و اگر مقيم شد اگر شخصی شد مقيم شد در بعضی از روز یعنی آقا عصر مثلا اومد فسید بخونه که در اول قد افتر فی اوله که اول روز رو خورده بود آه در قسمتی از روز اومد مقیم شد که اول روزو چکار کرده بود خورده بود جاز له ان یاکل فی باقیه جایزه که باقی مانده رو بخوره دیگه روزه نیست و دومین گروهی که برشون فقط قضا هست المريض، مريض شخص مريض أصيوفته إذا أعجزه المرض أنصاب، ميجي مي خورا، زمان كر روزه، ورو أزر روز، مريزي ورو أزر روز، ناطوان كان، ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأدة من أيامه آخر، وإن صح في أثناء يومين، قد أفتر في أوله لزمه امساك باقيه. ولی میگه اگر چنان چه در وسط های روز اومده و سالم شد که اول روزو خورده بود اینجا دیگه لازمه که باقی چیزی نخوره چیزی نخوره و ثالث البته این مسئله خیلی اختلافی است، چون اولشو خورده دیگه خیلی از میگن دیگه نیازی نیست که آخرش این بیچاره الکی دست دیگه همه داره و ثالث الا اغماء بهی به المغمى عليه اكل ام لم ياكل چیزی که روزه رو باطل میکنیم به coma رفتن بیهوش شدن میگه شخصی که بیهوش شده روزش رو میشکنه حالا چه روزش نیست اصلا روزه نداره چه خورده باشه چه خورده نباشه واجب و لا يكفر قضا ای میگیره اما کفاره نمیده بله دیگه این دست خود انسان نیست البته سفر دست خود انسانه ولی اختيار داد الشریعت والرابع الحائز تفترو بحيزها وتقضي ولا تكفر حائز روزش رو بحيزش میخوره كفاره نمیده اما قضائي ميگره فإنصامت في حيزها لن يجزيها مع اسمها. اگر زن حائزه روزه گرفت روزش درست نیست گلهکار هم هست ولهکارها هم هست لا فرماني کرده آغا والخامس حالا اگر دوزه مثلا جلو مردم نخوردون داصانش فرغو کنه ولی اگر نه امد نافرمانی شریعتو کرد و نحکار بشه والخامس, والخامس <تصفيق> النفاسا توفترو <تصفيق> بالنفاسی و تقدوی بعده ولا تقفر ولا يجزئوها انصامت فيه ميگزنی که خون نفاس داره خونی که برسر تولد فرزنده این هم روزشو مشکنه و بعدا قضائی میگره و کفار نداره اگر هم اومد و روزه گرفت اون روزش درست نیست. ها اگر بیا روزه هم بگیره اون روزه به درست به درد داشته می خب پس گروه اولو گفت که نه برشون کفاره هست نه قضا بچو دیوانه بودن. گروه دفو این پنج نفر بودن که فقط قضایی داشتن کفاره نداشتن و اما من تجبو علیه الكفاره تو دون القضاء. اما کسی که برش کفاره هست ولی قضا نیست. کفاره بده ولی قضایی نمیتونه بگیره. اون پیره مرد و ك... پیره زالاند یا اون مریزی که بعد از مریزیش دیگه درست نیمشه آه مریزی مزمین داره آه شخص مریز تا آخر عمرش من مریزی رو داره خب این دیگه کفاره داره ولی قضا خب ببینیم تبقی فقه امام شافی رحمت اللہ علیه و اما من تجیب علیه الكفارتو دون القضای ف الشیخ الهم و العجوز الهمتو اذا اعجازو همه با فلکی بری انه سومی افتارا و ان كل ان کلیومن بمد میگز اما کسی که واجب است بگون کفاره دبنه نقضا پیره مرد و پیره هستند هستن که پیرو فرتوت هستن تا جای ضعیف شدن که دیگه نمیتونن چیکار بکنن روزه بگیرن این دوتا افتارا روزه رو میخورن و کفارا و کفاره میدن ان کلیومن بمد به جای هر روز یک مد البته قهناف يك یک سا. احنا بودم چقدر کفاره هر روز ولی خب برای هر دوتا میشه استنباتایی از روات مختلف کرد برای این هم روایت از صحابه پس طرف خورده رفته یک مد شکار کرده؟ خب این ساده تره اون بیشتره در هر صورت میگه یک مدی رو میده یک مد هم ولا قضاء عليهم وقضى برين دو تا نيست فانتحمل مشقته صيام با ضعف الكبر سقطت سقطت ان هما الكفاره بيجاجر سختی روزه رو تحمل کردن با وجود ضعيفي پيري دیگه کفاره از سورت ميشه ساقط ميشه ها حسن پيرز اللهی خود منداری بيزور داره چیکار میکنه میکه و اما من تجب عليه الكفارة والقضاء اما کسی که برش هم کفاره هست هم قضا میگه حامل هست و مرزه، اونی که حامل هست و اونی که شیر میده اذا خافتا علا اولادهما افترت و کفرت ان كل یومن بمده و قضتا اذا امکنهما میگه حامل و مرزه زمانی که ترسیدن بر فرزندان خود اونی که در شکمش فرزند هست ترسید فرزندش زرری وارد بشه بارموز گرتن یا اونی که فرزندش شیر میده شیر دیگه وقت روزه ضعیف میشنن. خلاصه بر فرزت ترسیدن میگه میخورن و کفاره میدن به جای هر روز یک مد و قضایی هم میگیرن زمانی که ممکن شد براشون ولی فینخافتا علی انفسهما افطرتا لزيمهما القضاء دون الكفاره کالمریض ولی اگر بر خودشون ترسیدن که اگر بیان بچه رو شیر بدن یا اونی که در شکمش بچه هست بر خودش تاسید اگر روزه بگیره برای خودش ضرر داره میگه اینجا دیگه جز مریضا حساب میشن فقط قضا میدن دیگه کفاره ولی اینجا مذهب امام شافعی رحمت الله لسه اخترت اصلا ها بر حامل و مرزه فقط حتی کفاره رو حتی قضا رو هم نمیارن اصلا این نظری از صحابه نقل شده اونجا در قران میاد و على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين صحابی بعضی از صحابه که ابن عباس فکر کنم تو زهرمانه میگه من قزااتی گفته که این برای مرضیو چیزی در ذهن هست اگر اگر ابن عباس هم نواشی ولی در صحابه این نظری قتل وجود داره اینی که نظریه در صحابه وجود داره اینش قطعه ولی اسمش تو ذهن نیست اینو حسن حلاق در کتاب اللبابش همین نظریه رو میاره خب بریم جلوتر امام شافی این نظریه رو داده و ما لازم قضائه من شهر رمضان خب پس هر چهار گروه خون اونایی که برشون کفاره و قضا بود اونایی که برشون فقط قضا بود اونایی که برشون فقط کفاره بود اونایی که هم برشون قضا و هم کفاره بود و ما لازم قضائه من شهر رمضان فموصى عليه في تاخيره. و آنچه که لازمیست قضای آن از ماه رمضان شخص وسعت داره بر اون قضایی در تاخیرش معلم یعطی بعده شهر رمضان تا زمانی که رمضان بعدی نه این وسعت داره مثلا این الان رمزان مسافر اومده یه روز خورده این وسعت رو داره تا آخر این سال تا رمضان بعدی چکار بکنه اینو این وسعت داره این وقت داره فین اتاه قضا بعدو ما عليه و کفران کلی اومن به مدن لطفیر میگه اگر رمضان اومد و هلوز قضایی خودش خودشو نگرفته بود رمضان بعدی اومد میگه بعد از رمضان میاد قضاییشو میگیره اون روزایی کد رو نبوده ولی اینجا به جای هر روز هم یک مد کفاره هم میده بخاطر خاطر اینکه تاخیر کرده احناف میگن نا... تا... قضایی نداره و نظرشون هم قوی تر می نماید و من وقت قبل القضای و الامکان فلاشه علیه و هر کسی که مرد قبل از قضا آقا روزه بوده قبل از این که بقیاد قضایی بگیره قبل از اینکه که براش ممکن باشه مثلا مریض بوده براش ممکن نبوده روزه بگیره قبل از این که براش ممکن بشه قبل از قضا اومد و مرد قضایی نگرفتا اینجا دیگه فلاشه علیه برش چیزی نیست چون قبل از امکان مرده بیچاره قبل از مثلا رمضان اول رمضان سفر بوده دو روز خورده هنوز رمضان تموم نشده طرف فوت کرده خب فلا شیعه کی برش نیست یا مریض بوده خورده هنوز مریضش سالم نشده چی شده؟ باره و این معتا بعد الامکانی کفر، اما اگر بعد از این که امکان روزه گرفتن رو داشت مثلا امروز مریض روزه رو خورد فردا سالم شد 20 روز بعد شد مرد اینجا امکان روزه گرفتن رو داشته آقا طرف مریض بوده رمضان روزه نبوده عید شد سالم شد شوال سالمه قضایشو هم نگرفت، ماه بعدی اومد و مرد. میگه اینجا کفر عنه ان کل یوم به مدی طعام بدلا من سیام میگه کفره میده به جای آن به جای هر روز روزش یک مد طعام از روزش فس من مات قبل قضائی من مات قبل قضائی ولی امکان فلا شیعره قبل از قضا امکان مرد چیزی برش نیست ولی اگر و این ماته بعد امکان کفره عنه عن كل یومن بمده تعامن بدلا من الصيام. یا عنه عن كل يوم بمده تعامن بدلا من الصيام. میگه اگر مرد بعد از امکان کفره داده میشه بجای او برای او از هر روز روزش یک مده تعام بجای روزه پس بجای هر روز روزه یا شخصی یک مده تان چی داده میشه؟ یک مده خوراک کفاره داده میشه بجای روزه اش ولن میوجزی انیو سامعنه و جائز نیست که به جاش چه گرفته بیشه؟ روزه گرفته میشه میگو ولیش نمیتونه بیاد به روزه بیگه خب خیلی اصفقهان زریعشون همینه ولی در خود شافعی در پاورقی ورده میگه امام نواوی و افراد دیگر از شافیه گفته ولی میتونه به جاش روزه بگیره بدون کفار دادن و طعام دادن باله برخی فقها میگن میتونه برخی فقها میگن فقط در روزه نظری میتونه به روزه بگیره اما در مسائل دیگر نمیتونه به چیکار چکار بکنه روزه بگیره و بلکه به کفاره روزش رو میده فدیه خوراک دادن یک مسکیت